آیا می شود با مومنی که از دنیا رفته صحبت کرد و او صدا ما را می شونود مثلا اگر فرزندیم با پدرش که از دنیا رفته صحبت کنه و بگه به پدرش بگه برما دعا کن پدر متعددی داریم هم از امیرالمومنین سلام الله و هم از دیگر هزرات از امام باغر علیه السلام داریم که هزرات می رفتن به سر مزار مؤمنین با اونها تکلم می‌کردن در تعدادی از روایات که تعدادش هم کم نیست داریم که برید سر قبر پدر مادراتون دعا کنید برای زندگی دنیایتون که اونها آمینیشون حتماً به ایزاوات میرسه و از اونها بخواید که براتون دعا کنن روست زیاده. خود امیرالمومنین المومنین میرفت و در آرامستان میستاد با اونها دعا میکرد صحبت میکرد درخواست میکرد از قبر پیامبر، درخواست میکردن امام حسین علیه السلام همینطور امی دیگه همینطور